گل های نازم حالا که همه درس رو یاد گرفتین دوست دارین بهتون یه دیکته بگم پس سری یک کاغذ و مداد آماده کنین آماده این به نام خدا سوسن با من دوست است سوسن با من دوست است نقطه بذارین برین خط بعد سوسن یک رو سریع. زیبا دارد سوسن یک روسری زیبا دارد نقطه دوباره از سر خط شروع کنین او دیروز مریض شده بود تکرار کنم خب دقت کنین او دیروز مریض شده بود نقطه من و خواهرم آزاده با هم به دیدن او رفتیم و برایش یک دسته گل سرخ بردیم نقطه دوباره میخونم خونم رو نوشتتون نگاه کنین. من و خواهرم آزاده با هم به دیدن او رفتیم و برایش یک دسته. گل سرخ بردیم خب از خط بعد شروع کنین سوسن خیلی خوشحال شد سوسن خیلی خوشحال شد مادرش برای ما چای و شیرینی آورد مادرش برای ما چای و شیرینی آورد ما چای و شیرینی را خوردیم و خدا حافظی کردیم بعد به سمت خانه راه افتادیم به نوشتتون نگاه کنین دوباره میخونم ما چای و شیرینی را خوردیم و خداحافظی کردیم بعد به سمت خانه راه افتادیم نقطه بذاریم بیاین سر خط باران می آمد نقطه هوای سردی بود نقطه در راه پرنده ای زیبا دیدیم که در باران بالهایش خیس و کسیف شده بود که در باران بالهایش خیص و کسیف شده بود نقطه او را با خود به خانه بردیم و برادرم رزا از او موازبت کرد تا خوب و برادرم رضا از او مواظبت کرد تا خوب شد نقطه خب حالا سرتو بلند کن به تصویر نگاه کن از روی اون دیکتتو صحیح کن اون وقت به خودت نمره بده